اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند دی انداز نسبان نهایت باره الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَدُوا عَنْ تَبِيلِ لله اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ کسانی که کافر شدند و مردم را از راست خدا باز داشتند اعمالشان را موجود میکند والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم بکسان با که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به آنچه بر محمد نازل شده و همه حق است و اصول پرورشگاه نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را اصلاح می کند. ذلک بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا الثَّوَلَ کاتران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از حقی که از سوی پربادگارشان بود این گونه خدابند برای مردم زندگیشان را توصیف می کند فا اذا لکیتمو الذین کفرون فضرب الرقاب حتی اذا اتقنتمو هم فشدو فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحظ أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض هنگامی که با کافران در میدان جنگ روبرو می شوید، دندان‌هایشان را بزنید. به همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید، سپس یا بر آنها منت گذارید و, و آزادشان کنید یا در برابر آزادی از آنها فدیه بگیرید.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 با آنها را هدایت می کند و کار آنها را اصلاح می کند و آنها را در بهشت که اوصاف آن را برای آنان با کرده وارد می کند یا الذین ای کسانی که ایمان آورده اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می دارد و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنها و اعمالشند نابود با. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ان تخسر انست كان شي خداوند نازل کرده سراحت داشتند پس خدابند اعمالشون را حبط نابود کرد ا فلم ينظروا في الارض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علیه ولی امثالها آیا برزمین سهر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی قبل از آنها بودند چه شد؟ خداوند آنها را حلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات ها خواهد بود. ذلک یا ان الله مولا للذین امنوا وان لا مولا این ان بخسر اونا که خداوند مولا و بصرت کسانی که ایمان آوردند اما کافران مجد و ندارند الله ولحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى له بيقمان <تصفيق> خدادان كثان راكيمان آبردان وعمل صالح انجام دادان بورد باغ هاو يأذبهش ميكناد كنعرهاو أذير درخان الجاري در حالی که کافران از مطایی سو سر دنیا می میگیرند به همچون چهار پایان میخورند به سرانجام آتش دوزه جایگاه که آنها و که این من قریت هی اجد قوتا من قریت کلتی اخرجت که اهلتناه فلا لهم. با و چه بسیار که از شهری که تو را بیرون کرد پر خود بودند ما همه آنها را نابود کردیم و یاوری نداشتند نداشتم آیا کتی که دلیل روشنی از سوی فروادگارش دارد همانند کافی؟ که زشتی اعمالش در نظرش تزدین شده در هوای نفس پیربی می کند مثل جنتی تی وعد المتقون ایها انهار من مائن غیر آت، و من لبن لم يتغیر وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عتل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغبرة من ربهم كمن هو خالد في النار وزكوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم توصیف بهشتی که به به وعده داده شده چنین است که در آن نهرهایی از آب صاف و خالص است که بدبو نشده و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته و نهرهایی از شراب طهور که موجۀ لذت نوشندگان است و نهرهایی از اصل مصفا و برای آنها در آن از تمام انوای ها وجود دارد آمرزشیست از سوی پروردگار آیا چونین کسانی هممانند کسانی هستند همیشه در آتش دو دخند و آب جوشان نوشانده می شبند که آنها را از هم متلاشی می کند و من من یستنیو ایلیک من عندی که قالو للذین اوتو العلم ماذا قال آلفا گروهی الله على قلوبهم از آنان به سخنانت گوش پرامیدند اما هنگامی که از نزد تو خارج می شوند با کسانی که خداوند با آنها علم و دانش بخشیده از روی می گوگند این مرد الان چی آنها کسانی هستند که خداوند با قلبهایشن مهر نهاده و از هوای نفتشن قیلوی کرده اند. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم کسانی که هدایت یافتهاند خداوند بر هدایتشان جد بر روح تقوی به آنها میبخشد فهل نظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ آیا آنها جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان برپا شود در حالی که هم اکنون آن آمده است اما هنگامی که بیاوید فضاکر و ایمان آنها سودی نخواهد داشت فَعْلَمْ انه لا اله الا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ پس بدان که معبود جز الله نیست و برای گناه خود و مردان با ایمان استخفار کن و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را ميتاند ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرضين نظر علیه الموت کسانی که ایمان آوردند میگویند چرا سوره نازل نمی شود اما هنگامی که سوره محکم نازل میگردد که در آن نامی از جنگ است منافقان بیماثل را میبینی همچون کتی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه میکنند پس مرگ و نابودی برای آنها بهتر است قاطع و قول معروف، فاذا عزم الامر الله لكان خيرا اما گر آنها اطاعت کنند و سخن سنجیده و شایسته بگویند، برای آنها بهتر است. باگر آنها هنگامی که فرمان جهاد قطعیت می کند به خدا راست گویند برای آنها بهتر است. فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم اما اگر روی گردان شبید او یا جزئین انتظار میرا بعد كدر زمین فساد کنید و موجيد؟ رهن موجید لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خیش دورشان ساخته گوش‌هایشان را کر و چشم‌هایشان را کور نموده است. آیا آنها در قرآن تدبر نمی‌کنند یا بر دل‌هایشان کاف نهاده شده است؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم وأملا لهم کسانی که بعد از روشن شدن حق پشت کردند شيطان اعمال زشت را در نظرشان زینت دادهد و آنها را به با آرزو های طولانی فرفته است ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَمْحِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِسْرَارَهُمْ این بخاطر آن است که آنها با کسانی که نزول وحش علاجی را کراحت داشتند گفتند ما در بعض از امور از شما طیربی میکنیم. در حالی که خدا بند اثار آنها را می وَكَيْسَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ هُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ها ده انها چگونه خواهد بود؟ هنگامي كفر اشتگان مارگ برسودة فا پشت آنها ميتا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانهم فأحبط أعمالهم این خاطر آمد که آنها از آنچه خداوند را به می آورد، پیروی کردند و آنچه را موجب خوشنودی اوست کراحت داشتند پس اعمالشان را حبت و نابود کرد عجب آیا کسانی که در دلهایشان است گمان کردند خدا کی نهایشان را ظاهر نمی کند و لون شاؤ لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم و اگر ما بخواهیم آنها را به تونشان میدهیم تا آنها را باقیافه هر بشناسی هرچند میتبانی از فرز سخنانشان آنها را بشناسی و خداوند اعمال شما را می نبر و و ما همه شما را قطعاً آسمایش میکنیم. تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیاند و اخبار شما را بیا <تصالح> ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضره شيئا وسيحبط اعمالهم که <باردان> كافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و بعد از روچند شدن حق و مخالفت با رسول خدا برخواستند هرگز دیانه با خدا نمی و به زودی اعمالشان را نابود می کند یا کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا و اطاعت کنید رسول خدا را و اعمال خود را با سلم سافید بگمان کسانی که کافر شدند و مردم راز را از راف خدا باز داشتند سپس در حال کاف از دنیا رفتند خدا هرگز را نخواهد بخشید فلا تهنوا و تدعووا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم هرگز صلوث نشبید و دشمنان را صلح سلت بار دعوت نکنید در حالی که شما بطرید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب اعمال تنجا هرگز کم نمی‌کند. اینما الحیاة إن ولا زندگی دنیا تنها بودی و سرگرمی. وگر ایمان آورید و تقوا پیش کنید پاداش های شما را به نحو کامل می دهد و در برابر آن چیزی از اموال شما نمی طلبد چرا که هرگاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نموجد بخل می بردید و کینو خشم شما را أَشْكَرْ مِنْ فَصْلٍ هَٰنِتُمْ مَنْ أُولَاءَ تُدْعَوُنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْقَلُ وَمَن يَبْقَلُ فَإِنَّمَا يَبْقَلُ وَعَنْ نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آری شما همان جمعیت هستید که دعابت برای انفاق در راوه خدا می شوید و بعضی شما باخ می و حرکت باخ کند نسبت به خود باخت کرده است و خدابند بینیاز است و شما همه نیاز مندید و هرگاه سرپیچی کنید خدابند گروه دیگری را به جای شما میآورد که مانند شما نخواهند بود